to mm women. -hmm. خرکش. من علی اندلیبم اهل عل همه جا پسر مرحوم کلبرام خامکش بلا نسبت شما آدم نیستم میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست از همان بچگی مثل روز روشن بود که گلاب به صورت شما هیچ گوهی نمیشم چه حسرت به دل بود مرحوم بابام چه خیالاتی داشت علی تو میباد درس بخونی تو میباد عالم بشی من ناز کردم ولی هی هی بشم حتی ام جزم تمام نکردم الف دو سر ان دو زیر ان دو ور اون از مکتب زدم به چاک یعنی که تقصیر خودم نبود تقصیر همدولام مفو بود گفت علی تو مکتب چی بهت میدن گفتم هیچ گفت خیاری خربوزهی گفتم دل خوش داری همدو تو مکتب کف دست نیمیدن اونم با ترکه خیز خورده انار گفت پپه چه درد میخوره؟ گفتم هیچ زدم به چاک و رفتم باغ نمکی کاهو دزدی شکار گنجشک چه میدونم دو چرخ سواری درس و مشق را بوسیدم گذاشتم لب تاقچه بابا که ناامید شد دستش را زد پر قدش و گفت میخواستم آدم بشی علی، میخواستم اقل کم یه باقیات و سالهاتی داشته باشم، اما تو تر زدی علی تو دلم گفتم به من چه که تو باقیات داشته باشی، چیش به من میرسه؟ گفت پشیمون میشی، گفتم نمیشم بابا، درس خوندن سخته لجش بالا آمد، دست بزن داشت بابا، اما آن روز نفهمیدم چه شد که نزد گوشم را گرفت و پیچاند و گفت تخم بی بسم الله حالا که یتوره را بیفت دنبال حیوونا اقل کم یک کاسبی یاد بگیر برا روز سیاهد گفتم باشه بابا از خدامه گفت ماعمن به تو امانت یه رو میاد که میزنی تو سرت و میگی قوره ترش کورم کنه تو دلم گفتم اینا همه شعره گفتم چرت راه افتادم و همراه بابا رفتم کور پسخانه، رفتم خامه کشی، هر روز خدا با خدا بیا مرز بگو مگو داشتم، دست بزن داشت بابا، اینو که گفتم، با دگنک، با تسمه، با رونکی، بیشترشم سر نماز بود، میلرزید و فریاد میزد که ولد چموش، اون دنیا جواب خدا رو چی میدی، تو دلم میگفتم تا روز قیامت خیلی وقت هست بابا، تا آن وقت الایاذ بالله فراموش میشه کی نماز خوانده کی نخوانده حکایت کوره پسخانه هم بود بچه ماندنی بلا نسبت تو که میشنفی از انش پیداست زیرش زاییدم کره پسخانه را میگم سی چل روزی رفتم بریدم دیدم خامکشی کشی کار من نیست یه روز رفتم دو روز نرفتم گاهی دلم درد میگرفت گاهی سرم گاهی پام همش هم مسلحتی بود. بابا دید مردش نیستم. برام طبق گذاشت. سر سیمتری. تخمه، سیگار، کبریت اینم نشد. یعنی که تقصیر خودم نبود. تقصیر همدالله مفو بود. گفت پسر نمیدونی چه عشقی داره. گفتم چی؟ گفت دوب. طبق را فروختم به رحیم سرخو و با همدالله رفتیم زدیم به عشق. کفر بابا در آمد. زد و از خانه بیرونم کرد افتادم تو قمار 21 و یک شیر اشت و علک مرحوم بابا ده کت بیشتر سر قمار مچم را گرفت صد کت بیشتر از خانه بیرونم کرد حتی یه دفعه دستم را گرفت و کشان کشان بردم کلانتری تا ازم التزام بگیره که پسرش نیستم تا اگر دزدی قتلی یا جنایتی کردم پاشگیر نباشه اما از دستش فلنگ را بستم و ده برو که رفتی این میان ننه خدا بیا مرز بود که خونه دل میخورد. بابا را مجبور کرده بود که بره پیش ملا احمد نیماقا دعا بنویسه تا برگردم خانه سه هفته یازگار ویلان و سیلان بودم شبا تو قهف خانه حسین سوخته میخوابیدم. روزا قمار می کردم. یا دل دزدی، کیفزنی، کفزنی، جیب بری آخه شکم صابمرده مرده که حالیش نیست باید سیرش می کردم. تو قهوه خانه با رزا بر جورم جور شد اول دفعه که آجان مچم را گرفت کیف یه دهاتی را زده بودم تو کیفش چیزی نبود نامراد اما گیر افتادم زندانم بد جایی نیست اگر آدم حال و سلش را داشته باشد اقل کم قضایی هست سقفی هست یه ماه بیشتر نگرم داشتم بیرون که آمدم برا خودم آدمی شده بودم زندان دیده بودم، کلی پوز داره خودش. تو حرف دو کلام پرانی که زندان بودی همه رو تحساب میکنن. گاهی وقتا میرفتم زیر پل ماهیگیری. اگه چیزی به قلابم می خورد که نانم تو روغن بود، میفروختمش به الیاس، قهوه‌چی زیر پل را میگم که قمار را میندازه. مرد و نامردیش به من مربوط نیست، هرکس تو قبر خودش میخوابه. اندالله پول خوبی میداد، نهارم هم گردنش بود. بعد دعای ملا احمد نیماقا کار خودش را کرد برگشتم خانه یعنی از دربدری خسته شده بودم باز اشتلم بابا شروع شد چرا نماز نمیخونی چرا مسجد نمیای چرا از علما روگردونی چرا دنبال حیوونا نمیری گوشم به این خردفرمایی فرمایشات بدهکار نبود با رضا جیبر افتادم تو دود افتادم تو عرق رفیق بد آدم را بد می کند بزرگتر که شدم زدم زیر همه چیز نه تشر بابا به خرجم می رفت و نه عجز و التماس ننه کله سهر لونگ منداختم روشانم و قلاب ماهیگیری و تعمه را ور می داشتم و نیم بطر عرق از تو با یهودی می خریدم و می راندم زیر پل گاهی وقتام یه حب بالا منداختم ماهیگیری با قلابم کار و کاسبی نمی شیم. اگر وقت بزنه و یه نربچ به قلابت بیفته، ای. وگرنه شغل به درد بخوری نیست. عاقبت نداره. بیشتر عشقیه. ماهیگیری آدم و مبتلا میکنه. مثل چال لپ رباب که مبتلام کرده بود. دختر مش ملابره را میگم. ملابره آجورتراش. گاهی به خودم میگفتم اندلیب. این شد کار. این شد روزگار. شد زندگی. اما هرچه نصیب است نکم میدهند. قسمت آدم از روز ازل تو پیشانیش نوشته مثل رباب که شد قسمت حمدالله مفو رفیق خودم را میگم پسر ملا احمد نیماقا. تا نباشد امر حق برگی نیفتد از درخت نصیب مام از زندگی همین بود همینه تا بابای مرحومم زنده بود قدرش را ندانستم اما همچین که سرش را گذاشت زمین فهمیدم چه جواهری را از دست دادم ولی دیگر گذشته بود یتیمی درد بیدرمان یتیمی ماله قوره ی ترش کورم کنه بابا که مرد انگار از خواب بیدار شدم چشام و وا کردم بیدم پنج تا خرمانده و یه خانه درب و داغان و یه ننه قرازه به خودم گفتم علی اندلیب بیا و از خدا بترس از روز قیامت بترس از پل سلات بترس یا آدم شو، نماز بخون، روزه بگیر حالا درس نخوندی نخوندی، با نشدی نشدی اجاق دنیا که کور نمیشه اقل کم مثل مرحوم بابا روزای جمعه برو خدمت علما مسئلت رو بپرس گفتم برو مسجد برا اون دنیا توشه سفری و با کن دنیا که کن نشده همه اینها رو به خودم گفتم اما آدم نشدم که نشدم اصلا قسمت هر کس هرچی باشه همانه هرچه چه نصیب است همان میدهند گر نستانی ستانی به ستم میدهند روزی هیچ کس را هیچ کس نخورده روز بعد از ختم بابا صبح سحر یه حب انداختم بالا و لنگ را لوله کردم و مثل شال بستم به قدم و حیوونا را ریسه کردم به کوره پس خانه غروبا که برمیگشتم اول میرفتم عرق فروشی شرق، نیم بوت کشمش با لوبیا یا دو سیخ کوبیده می زدم و بعدم اگر پامیداد دودی می گرفتم و میرفتم خانه و کپی مرگم را می زاشتم. یه شب انگار اول محرم بود یا ماه مبارک رمضان از شرق برمیگشتم تو سیمتری یک یک کوچشم افتاد به سردر مسجد ها که چراغان بود دلم وا شد تو مسجد مثل روز روشن بود شلوغ بود جماعت دست دسته میرفتن تو مسجد. اول دلم گرفت. دیدم عجب آدم بی خودی هستم. دیدم اصلا آدم نیستم. بعد زدم به سیم و گفتم یا عبور یا جبر هرق خوردی که خوردی؟ جا به جا جابجا بودو جا به جا کنستعین. سرم را انداختم پایین و مثل بچه آدم رفتم تو. با کسیم حرفی نزدم تا بوی دوارا بشنفه. گیوهام را زدم زیر بغلم و یک راست رفتم و نشستم پای ستون شبستان. آقا رو منبر بود، موعظه کرد. صداش به دلم نشست. شش حواسم را جمع کردم. هنوز که هنوزه فرمایشاتش به خاطرم مونده. مؤمن، سری به دلت بزن و حال و احوالش رو بپرس. به حال خودم نگاه کردم. قصم شد ببین دلت به یاد خدا هست یا نیست دیدم اصلا به یاد خدا نیستم مس بودم آدم مس که به یاد خدا نمیفته دلش سیا میشه به دلش مهر میخوره قفل چشام پر اشک شد علاجش ذکر خداست ذکر خدا پیرمردی کنارم بود سرش روزانوهاش بود آرام ناله میکرد تسبیحش زمین بود، پیش پاش، تسبیح را ورداشتم و یا الله یا الله گفتم، حالیم نبود، انگار بلند گفتم، پیرمرد سر برداشت و نگاه هم کرد، خجالت کشیدم، روزگار را نگاه کن، سرم را انداختم پایین، فرمایشات آقا دلم را لرزاند، روز پنجاه هزار سال، فوج فوج تو صحرای محشر حرام خورا دروغگوها اونها که خلف وعده میکنن شراب ذکر گفتن یادم رفت پشتم لرزید پا شدم تا بقیهش را نشنفم آدم ندونه چه بلایی سرش میاد خیالش راحت تره از مسجد زدم بیرون گفتم علی اندلی بیا و با خدای خودت عهد کن از شب نماز بخون تو راه دیدم که تصبیه پیرمرد دستمه. قیمتی نبود. از همین تربتهای سفید بود. گفتم شاید خدا خواسته با همین تصبیه هدایتم کنه. به خانه که رسیدم وضوع گرفتم و دنبال جانماز گشتم. ننه گفت پی چی میگردی علی؟ گفتم جانماز ننه. چپ چپ نگام کرد و بعد بلند شد و مهر رو جانماز آورد و نشست و نماز خواندنم را نگاه کرد. تسبیح پیرمرد را گذاشتم کنار مهر و اقامه بستم. بعضی جاهای نماز یادم رفته بود. دعادست چی بود؟ کما ربیانی صغیرا را... خیر. تشهد نصف نیمه یادم بود. خنده داره به خدا. نماز را تو مکتب مثل بلبل یاد گرفته بودم. امان از ذهن کور. هر جا لنگ زدم به جاش صلوات فرستادم. ناقص خواندم و خوابیدم و با خودم فکر کردم. دیدم عجب آدم بی خودی شدم. به خدا التماس کردم که راست به کارم بیاره. التماس کردم که گناهام را ببخشه و هدایتم کنه. اگر روز قیامت خوک می شدم مکافات بود. یعنی هر کس خلف وعده کنه همین بلا سرش میاد. بوزینه انتر میشه پناه بر خدا. روباب چی؟ اونم که به عهدش وفا نکرد و زن همدولا مفوط شد هم؟ نه دیدم عجب آدم گوهی هستم دیدم خیلی ول معتلم به خدا التماس کردم نجاتم بده راست به کارم بیاره راستیاتش بیشتر از کارم دلخور بودم تو حر گرما تو شرجی تو آفتاب هی باید از گودال خشمالا میرفتم سر کرو و برمیگشتم گاهی دیزه سگمسبم گی میگرفت و کفرم رو بالا میآورد. تا آن روز شرجی که چار تا سم را میخ کرد و جم نخورد. منم از قیز چوب را کشیدم به بختش و حالا نزن پس کی بزن. یک هو حرام لغمه از جا کنده شد و جفتک پراند و عد کف به قلم پام. تو گرما دلم از حال رفت دو تا لنترانی نصار خودم کردم، نصار خودم و آبا و اجرادم، نصار هرچی خرکچی و خام مال و کور پزه حیونا را ول کردم و شلشلکی رفتم زیر سابات خشتمالام لنگ را از قدم وا کردم و بستم دور قلم پام خدا خواست فقط پوست گرده پام برآمده بود به همدله نشکسته بودم و دردی داشت که مرد زیرش میزاید. از سوار چرمه شدم و راندم به خانه و دست و روم را شستم و یک راست رفتم شرق. اول یه نو خود شیره انداختم بالا و بعد گفتم دو استکان بیشتر بخورم شاید دردش آرام شد. اما نشد. خوشخوشک یک بط بیشتر خوردم. دیگه چشمام آلبالو گیلاس میچید. وقتی رسیدم خانه و چشمم افتاد به حیوانا خیال کردم همه بدبختیام از آن زبان بسته هاست. گفتم اگر آن خدا بیا مرز به جای این مالا، یه تاکسی، یه نوموایی، چه می دونم، یه کلپزی به ارث گذاشته بود، حالا این درد و این روزگارو رو نداشتم. بعد گفتم هرچی خدا بخواد علی اندلیب. بعد یکو دیدم دیزه ناکس به ار افتاد. منو میگی گی، یکو خیال کردم داره مسخرم می کنه. شیطون رفت تو جلدم. پدرسگ پوزشو پوزشو عد گرفته بود تو روم و انگار بران ننش ابو عطا میخوند یکو انگار کسی دستم را گرفت و برد به چاقو مست مست بودم خر خر بودم یکو نهره کشیدم و راندم به دیزه و گفتم ناکس قلم پامو خرد کردی و حالام برام رجز میخوانی چشمت روز بعد نبینه تا ننه با چراغ از اتاق بیاد بیرون زرب زدم تو شکم دیزه و جرش دادم ننه جیغ کشید اما حالیم نبود شکم نیلرم سفره کردم ننه فانوس را گذاشت لب آخر و دو دستی زد تو سرش و شد رو زمین به جیغ کشیدن نیلو و دیزه تو خون دست و پا می زدن و رود پوده و گوهشان قرقاتی شده بود آمدم چرمی را کارتی کنم که ننه یقش را جر داد و به صورتش چنگ انداخت و پا شد و سینه لختش را جلوم گرفت و گفت آقت می کنم علی اول منو بکش چشام افتاد به سینه های پیر ننه که مثل دو بادمجان چروکیده تو دستاش گرفته بود. سرد شدم. یخ کردم. زانوام سوس شد. چاغو را پرد کردم و رو زمین پن شدم به زار زدن. گریه ای کردم که مپرس بعدشم که هی. هرچی قسمته همانه. خانه و سه تا حیوان دیگر و فروختم و تاکسی خریدم. بعدش هم که ننه عمرش را به تو داد بعدم آن تصادف که تاکسی شد آهنگ رازه راستی خدایی بود که جان سالم به در بردم وگر نه نصف شبی تو جاده نفتی کوت عبدالله مس باشی و با آن سرعت کوبی به نرده پل شرکتی و کل معلق بشی و رو ده تا لوله نفتی بیست اینچی و فقط پات قلم بشه اگر کار خدا نباشه پس کار کیه؟ در یک لتهی دخم زیر خرپشته باز می شود تو ای جای خرکوش میخواستی سر قبر بابام باشم نوری خانم چه مرضی به جونت افتیده امشو خودتو قایم کردی خلوت کردم نوری خانم پناه بر خدا با کی با خودم زده به سرت خرکوش مامان دستت گومرگی شده پاشو برو ابریشمی بخر علی اندلیب تو سیمتری روی پای لنگ تکیه می دهد. سیگاری به لب می‌گذارد و از رو بسات کنار جدول بسته ابریشمی را بر کسی صداش می کند. سر بر می در انبوه صداها سر درگم است آشنایی نمی چشماندازش هزاران چراغ پرنور است و انبوه مردم رنگارنگ که در هم می لولند. باز کسی صداش می کند. هر کش. سر بر می گرداند. کنار پیاده رو مردی از پنجره ماشین گردن کشید است شقیقهاش سفید است تلا خانم هست؟ علی اندلیب در قوقای خیابان در انبوه صداها، ماشینها، رادیوها زبطها، حرفها و فریادها بسته ابریشمی شمی به دست به چشم مرد میان سال چشمی روزد و هیچ نمیگوید.